نشست استاد جدید نجات پیرامون نقد دیدگاه حاکم بر کتاب های رجالی عصر حاضر خب, خب. کردید؟ نمازمون دارده خب. آه خاموشه اعوذ الله الرحمن الرحیم اللهم محمد و آل محمد خودشون میتونن سوال کنن مشکلی نداره به شرطی که دیگه الکلامیه و رول نشه بعد از اینکه اگه وسطش بپرسن پوتاخ باشه جواب میدن حافظا بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و علی آل محمد خب همونطور که آقایون انوال بحث بندر دیدن نقد نگاه حاکم بر کتاب‌های رجاییه عرض می‌شوبر خدمت شما این نقد خودم در دو محور پیگیری می‌کنم یکی در مورد مذهب راویان در کتاب رجالی خودمون یکم در مورد اعتبار تذیبات در کتاب های رجالی خودمون ابتدا در مورد مذهب رابیان در کتاب های رجالی خودمون به ویژه بهرست شیخ توسی و رجال نجاشی میپرد بسن عرض که خلاصه بحث اینه که نمای ما نمای رجالی ما که شخص نجاشی یا شخص توسی باشن در مورد مذهب راویان به خاطر کمبود منابع و نداشتن عرض شود در خیار نداشتن کتاب های متعدد عرض می شود در مذهب راویان چه اشتباه شدن یعنی خیلی از اشخاصی که خیلی حالا به طور نسمی از این کناخذ تعداد قابل توجهی بیش از یک ست از اهل سنت نامشون در رجال نجاشی و پهرست شیخ توسین اومده و این دو بزاگوار متوجه عامی بودن خیلی از این افراد نشدن به بیجه نجاشی یک کلمه خیلی گولش زده و که اگه میدید که در برخی از منابع و کتاب های سنت بر کسی اطلاق رخص شده یعنی گفتن کلانون راپزی نجاشی اینو رو عنوان اینکه که صد درصد اون شخص آمیه تلقی کرده شیعه نجاشی این رو به عنوان اینکه صد درصد اون شخص شیعه است تلقی کرده یعنی رافزین بودن رو مساوی با امامی بودن نیسته شیعه به منای اخستش در حال که اینطور نیست عرض می شود که به طور کلی تشیع در قرن تا قرن سبوم هجری و حتی اول قرن چارم هجری هم در کتابهای رجالی عرض سنت خیلی وقتا اطلاق تشیع شده بر اشخاص و راویانی که عرض می شود که اونها سننی بودن تنها چیزی که باعث شده تشیع بر اونها اطلاق بشه این نکته بوده که مثلا طرف به معاوی دوشنان قائل به تقدم علی علیه السلام بر عثمان در حالی که کسایی که قائل به تقدم علی علیه السلام بر عثمان بودند، خیلش رو سننه بودن. ترتیب خلقه ها رو بعضی از سننی ها اینطوری میدونستن که امیرن مؤمنین رو در رتبه سوم قرار بدن و عثمان رو در رتبه چهار یا اگه کسی دشنام می داد به معاویه یا اهل بیت رو خیلی نقد کرد به ویژه احادیثی که داله بر افضلیه تنبیرن مومنی بود نه مطلقه فضایل احادیثی راویه احادیثی بود که داله بر افضلیه تنبیرن مومنی می کند عرض می شود که همه اینها رو وقتی اهل سنت می دیدن بران شخص اطلاق تشعیق یعنی میگفتن فلان اون یا شیعیون یا حتی منقلات شیعه و حتی می گفتن رافزی یعنی رافزی اگر چه بیشتر اوقات تقریبا همین هست مونن بیشتره که میگیم با تسامح میگیم بیشتر اوقات نیست بیشتر اوقات وقتی میگفتن فلان اون رافضیون مرادش این بود که طرف دشمن داشت به شیخان ابو بکر خلیفه اول دو خیلی از اوقات بیشترش هم میگم با تسامح میگم نمیشه بیشترم گفت تقریبا خیلی وقتا اطلاع کردن بر شخصی راقزی بودن را در حالی که اون فقط همین تق... قایب تقدم حلی علیه علیه السلام و عثمان موده یعنی به شیخ معتقد بوده به افضلیت ابو بکر و عمر متقد بوده خلافت این دو شخص رو تصیح می‌کرده. مشکلی نداشته فقط قائل به تقدم علی علیه السلام بر اسمان بود. بر این هم تشریع اطلاق شده خیلی وقتا و گایی وقتا احیانا حواستون باشه احیانا چون گفتم بیشتر رقا بر کسی اطلاق می شده که دشمن می داده به شیخنگ ولی احیانا همین راقضی بر کسی که قائل بر افضلیت امیر المؤمنی نسبت به شیخنگ بوده هم اطلاق می شد. یعنی اشخاصی بودن که خلافت ابو وکر و عمر را صحیح می ولی می گفتن در این حال علیه علیه علیه علی علی علی علی السلام افضل فقط قائل به افضلیت بودن ولی خلافت ابو وکر عمر را صحیح می دونستن ولی اینها هم گاهی وقتا راپزی بودن اطلاق شده عرض می شود در حالی که طرفیش مشکلی باشه ای خیم نداشته عرض می شود که اینو ما الان می که کتاب اهل سنت بوده ولی نجاشی با دیدن این که اهل سنت بر بعضی اطلاق راپزی بودن کردن قطعاً یقین پیدا کرده برای اینکه که اون شخص امامی مذهب بوده نه شیعه بالمعنه شیعه به من آمش نه بلکه فکر می کرده شیعه به منع خواستش بوده طرف یعنی امامی مذهب بوده این خیلی بودش عرض نشود که به طور کلی اگه خیلی سمط اگه خیلی خلاصه بخایند بگیم وقتی شما تطبق می‌کنید در کتاب‌های اهل سنت به وضوح این قضیه رو می‌بینید که خیلی‌ها که اطلاق رفض شده بر اونها یعنی در بحثشون گفتن کلانون رافضه یوم اینها تمام یا بیشتر مشایخ و شاگردانشون سنی بودن آمی بودن خب اینجور در نمیان این که شخص اختلاطش با اهل سنت بوده و بیشتر شاگردان و مشایقش از اهل سنت بودن این تعارض جدی داره با این که رافضی بودن رو اینجا به من چی بگیریم امامی بودن در یک کلام مقدار اختلاط شخص با اهل هر مذهبی اون تعیین کننده مذهب شخصه و اون حاکم بر همین تو اصطلاح که و تجریحاتی که به صورت رافضیون تشیع اونها در وسط بعضی از لجار گفته میشه یعنی اگه گفتم فلانون رافضیون بعدش عرض میشود ما تو شرح حالش که بیشتر شاگردان و مشایخش کیان از اهل سنتن این تباره این نمیتونی ببرید چرا اگه گفتن را به زیدون یشتومو عوابک و عمر یا یشتومو شیفه این نه این دیگه صد افصد به اینه که چیه ترق یا امامی مذهب بوده یا حداقل دقیق جارودی مذهب بوده چون جارودی جارودی مذهبا که پرقی از زیدی هستن اونها هم به شدم شیخه هم می پرداختن به خلاف بوتریه و سایر پرق زیدیه بله اگه گفتن پلانون راپزی و یشکم و این این بر براپزی بودن طرف میکنی یا حداقل دقیقا بودنش که نزدیک به باید اما بقیه پرق زیدی هم داختن چون بوتریه دشنا نمی به شیخان. بوتریه به شیخان دشنا نمی من دیگه مقاله ای نمشته. سال پیش منتشه شده یک سال پیشه نزد کنان دکنم 14 ماه اینا گذشته از انتشارش چارده پونزده ماه و به اسم نگاه کنید رجال الامه ی رجال نجاشی و فهست شیخ رجال الامه ی رجال نجاشی و فهست شیخ شیخ توستی در این مقاله صد نفر از این اشخاص رو من جدا کردم که نجاشی و شیخ توزی هر دو یا یکی از این دو بزرگوار عرض می شود که این شخص اشخاص رو ترجمه کردند و در مذهبش سکوت کردند به طوری که علما فکر استثار عامی بودن کردن یا یعنی اینکه که نه اصلا تصریح کردم به امامی بودنش بیشترشون رو نجاشی و شیخ توسی ترجمه کردن و سکت ها ان مذهبه ان مذهبه هم ولی ساکه شن درمود مذهبش خب میدونید که معروفی که اگه نجاشی و شیخ توسی در کتابشون به ترجمه شخصی بپردازن و در مورد مذهبش سکوت کنن این استظهاره چی میشه ازش؟ امامی بودن امامی بودن هم شخص استظهار میشه میگن اگر آمی بود حتما تذکر میداد نجاشی و شیخ توصی. کمون که در بعض از موارد این کار رو کردن در موارد قلیل این کار کردن بلانون آمی یون گفتم قشق یا سایر مذاهر پاسدن همینطور بلانون فتحی یون واقفی اینا همه گفتن خب همین این اتباقا باعث شده که بیشتر دامن بزنه به این قدی چون در بعضی از موارد نجاشی و شیخ توصی. وقتی شخصی رو ترجمه کردند که فاسدون مذهب بوده و به ذکر فساد مذهبه او پرداختن در نتیجه گفتن پس اگه سکوت کردن این دو بزرگوار از دمون مذهب شخصی ما استثار امامی بودن میکنیم اون حتما امامی مذهب بود در حالی که با یک تخصص جدی در این دو کتاب اونجوری که من بنده همین تو مقاله چیز کردم تو مجله کتاب شیعه چاپ شده شماره 21 و 22 مجله کتاب شیعه شماره 21 و 22 بعد به عنوان رجال الوهام فی رجال نجاشی و فهرست شیخ 113 نفر از این کسانی که نجاشی و شیخ طوسی به ترجمه اونها پرداختن و سکوت کردن در مورد مذهبش یا حتی تصریح کردن اخیانا به اینکه این از امامیه است من اصحاب اینا تصریح کردن به اینکه این شخص از اصحاب ماست ولی وقتی مراجعه کردیم به کتاب اهل سنت دیدیم آقا این شخص حدیثش بین اهل سنت اشتهار داره دقیقاً یعنی تئیدات تعداد او بین مراتب بیشتره در بین اهل سنت تا مشایخ و شاگردانش به مراتب بیشتر از بیشتر از عامه هستند تا از امامیه یعنی اخلت بوده با اونها اختلاطش با عامه خیلی بیشتر از شیعه بوده خب این بهترین این حاکمه اینکه شخصی اختلاطش با اهل سنت بیشتر باشه این حاکمه بر اون رافضی بودنیه که بر اون اطلاق شده و ما اونا نهیمت از این رافع بزیر اگه چرا گفتم رافع زیون یشت ما شیفان، این فا بر اون حکومت هم میگم اونجا اون نسته این ظهور داره یعنی اختلافش با آمه ظهور در آمی بودنش داره اما کسرت اختلاف شخص با آمه و اینکه بیشتر مشایخ به ببینیش شاگردانش از آمه باشن در صورتی که فقط اطلاق لخص وجود داشته باشه یعنی مقایت نشده باشه به اینکه مقایت به شتم عبو عمر نشده باشه نه این حا... بلکس میشه قضیه این حاکمه این حاکمه و ما عرض میشه با که با آمی بودن اون شخص میکنیم و میگیم که مذهبش مختیب بوده بر نجاش اینه ها عرض میشه بود که اگر هم دیدن راقضی یا حتی تصویل کردن که, من از کردن. که دیدن عده سنتی کتاب ریچارشون احیانا گفتم فلان و رافضیان رو به معنای امام تعریف کردن این اشتباه بعد از بنده اختلاط شخص با اهل هر مذهبی این تعیین کننده مذهبی اون اگر... عدم که برعکسش هم همینجوری اگه کسی مثل حماد بن عیسیه پسر بزنیم از این بن بزنیم مثلا شخصی مثل هماد ابن ایسا در بین اخلصانت هم روایت داره چون کتاب های ریجانیشون هم اتباقا داره و او رو اصلا نسبت به تشکیج نسبت تشکیمی در مورد او در کتاب های رجالی ارکل وجود نداره هماد ابن ایسا قریب بر جهفت به قطعه با این نیمان میشون بر از هماد ابن ایسا دوره جا هست که میدونی فرق حرف می‌شوند هماتون هم ایسا را ترجیح می‌کردن و در نمصبو علیه شیعن اونا تشبیه هم هیچ نسبت تشبیه به او ندهدن خودی چی میشه؟ اگه می یعنی اون طرف نایی؟ دقیقا همین اشتباهی که علمای رجالی ما دارن به خاطر نداشتن منابع لازم و عده مراجعه به کتاب احل سنت اهل سنت هم دقیقا همین اشتباه را مرتقب شدن حماد ابن ایسا را به خاطر اینکه مراجی نکرم میکرد کتاب حدیثی ما و کتاب رجاعی ما ندیدن که اختلاعات او با امامی مذهبا بیشتره او را ترجمه کردن و هیچ نسبت تشکیه به او ندادن خب اگه بگیم این درگه درسته پس باید بگید چه حماد ابن ایسا آمومی مذهب دید. نه حماد ابن ایسا سه چهار نفر از اهل سنت ازش روایت تراسد او هم از سه چهار نفر از اهل سنت روایت کرده یعنی چهار پنج تا شیعه هم میداره چهار پنج تا شیخ شاگرد هم میداره اما بیا می تو شیعه چند نفر شیعه از امام ابی نصر روایت میکنن و اون از چند نفر از شیعیان بزرگان رابعین بزرگ امامیه مذهب رو گفت اصلا قابل مقایسه نیست قابل مقایسه نیست خب، این معلوم میشه که هماده هم پی چی بوده؟ دماغم ازم ببیشه که وقتی اضافه کنیم که روایاتی که نمکنه بخش از فکر شیعه است فکر اختصاصی شیعه به تو عادتاً به طور محمول هیستونی میده فکر اختصاصی مذهب مخالب با خودش روایت کنه این کار ازش سر نمیزنه هم همین ببینید همه هماده پی یه مثال خیلی گوش یه نظر دیگه لیسند. رب یک ن عبد الله. همین هم. یا آسم یک ن همای آل هنات. اینها که دو مثل رواجات شبلسه هموده ای ایزا در کتابهای هدیسی ما. چندیم یعنی اینکه ده برابرمون چیزی که در بیان پستمون هم نرده. همین آسم یک ن همای و رب یک ن عبد الله. علا کسرت روایتی که دارن در کتابه حدیثی ما در پین اهل سنت هم فران نام روایت کردن ولی در پیاس با اهل سنت خیلی کم تعداد روایات این سه موضوع یعنی همین مثلا برپرز رفیو ابن عبدالله آسمه ابن حمد الحنات یا همه دوبن ایزا به این اهل سنت قلیلال حدیث خیلی روایتشون کمی در پیاس باشیه از یه اون بر تو اهل سنت چهار تا سنی از اینا رواید کردن از حماده دفنی ای ایسا و ری ای و اینها دیستین افر رو از امامی رواید کردن چندین برابر تعداد روایاتشون هم که خیلی باشد میگن حراور این, این که دخش از حق اختصاصی شیعر اینا رواید کردن حالا این سن که بودی که خدمتان یعنی این برعکسشون و تعداد اینا کم هیستن یعنی همون اشتباه که علمه های ما مرتکب شدن یعنی از اطلاق رخص بر بعضی از رجال تصور کردن که اون شخص چه این مذهبه از مجرد اطلاقه رخص بیدونو مراجعه به کتاب هدیسی مذهب مخالف و بیدونو مراجعه به کتاب رجال مذهب مخالف سکوت کردن به شخص و این باید شدید که استثهار باشه و اصلاح این طرف آمیه یا برعکسی که استثهار باشه ایشی هست این نیست پس از سکوت علمای رجالی خودمون با توجه به مقدار با تنباه که تخلافی که می‌بینیم یعنی سکوت کرد پس این استثهار بدن بودن بکنی بعد مراجعه که این به کتاب رجالی عبدستان نه دیگه نمی‌سازه کسرد علوایت او. در حین احدثت و نرمی و این که عموم مشاید و شاگرانش از عام بودن در تعارض بالین بوده متوجه چیه فریب نجاشی و شهر تنسیل به قدمه رابضی از اطلاع و بر اون شخص اینها فریق بودنین دو بزرگوان یا نزید روزادی متوجه این فریق میشین می شود که اینها تعدادشون همینطور که در کتاب دجادی ما فراقی یعنی فراوان فراوان که منظور هم بالاتر است. همونطوری که ایده زیادی از که نجاشی و شیخ طوسی در مورد مذهب اونها سکوت کردن یا حتی تصریح به امامی بودنش کردن به خاطر اعتراض رأس اونها همونطوری که علما ما دچار اشتباه شدن توی اون بران تو کتاب اردسان دائما همینطوره. یعنی اونها وقتی دیدن که چهار رفتر از هم از خواهی خودشون از بزرگان اهل سنت حتی آتونه از این آها روایت کردن و این آقا هم از چند رفتر از اهل سنت بزرگان اهل سنت روایت کرده اونم پر خودم فکر کرده که چیه این آقا آم میبنزهره در حالی که چی بوده؟ شیعه بود. مثل هم گفتم همه دفته ایسا قاسبه بکنه همین و یعنی عبدالله و خیلی دیگه. خیلی های دیگه خیل این من این طرف شما تا کردم اون طرف هم کردم این امیداریش دفاع کردم مثلا که اینا اسمشون اومده اون را سکوت کرده آمونی بودنم از همش اهل سنت ولی ما قد داریم به امامی بودن اون شخص از این افراد هم ذکر کرده به مقاله مراجعه کنید ست نفر کسایی هستن که استظهار کردم آمونی بودنشون رو دفاع در را که نجاشه کردن چیه؟ او ام یا تصویح می درش کرده یا سکوت کرده در موردش و خودود ۲۰۰ چند نفرم هم ذکر کردن که اهلسلت اون کار ذکر کردن و تصور شده که اونها آمیان در حالی که قطعاً چی بودن؟ امامی بودن امام از امامیه بودن بخوان آقای چیم؟ امامی به تقریب شده؟ از ما به تقریب از, امام امام از شون میشن توی مسئله مدینه آره برخاطر هم قول امام که امان که من دوست دارن ما, ما نمیتونیم با وجود کنین قول از امانساده ارز میشود او, او رو رو ببینیم که بخواه اختصان رفت کنیم تقبلیم تقلیم ولی شیعه به معنای اهم ده. یعنی چی فقط باعده به افضریه علی و شیخن ولی به هر شیخن باتایی اصلا یا به شط میشه این خیلی نمیدن این کار رو نمی کرده رابزی شینی شیلی به معنی چی بوده؟ عام بوده گفتم تو اینجا هم نمیشتم تشریع به معنای عامش چند تا من بوده؟ گاهی رفته هم باشه باشه باشه حتما میگم که پلانون راه رزی تو حتما امامون باشه گاهی رفته گفتم پلانون تشریع یا شیلی بله یا ولی باقع امامی بوده لازمیست را حقا رافظی باشم تشریف در عرف آمه و سلف اونها عرض میشه به حموم مردمشون بعد چندی معناه رایج اطلاق میشه یک کسایی که به نحل فراغان فضایل اهل بیت میپرد بکن حالشون به نحل فراغان فضایل اهل بیت ببیشن انگیرمون میگن. دو کسی که قائل به اخزالیت علیه علیه علی علی سلام نسبت به شیخان بوده ولی به شد می شیخن نیمی دن که مثل متظرم همینطوری می دن می, دهن. می که متظره قاید به افزره جهلی علیه, علیه السلام و شیخن می دهن. ولی چیه؟ خلافت شیخن رو صحیح می دن یا بطیه همینطور بطیه هم همینطور خلافت شیخن رو میکنند ولی علی رو افزر می دونستن یا مصالحه که خودش پیشه کنار درسته برای همین خلافت شخن را ت دو پس یک به نقل کسیی از غضایت صلب می پرداخته برای همه اطلاحت شی بر شده دو باره و علیه عیه سرسط شم میده سه فقط دشننا میداده به معاویه و تما زوقه رو کسایی که به جنگ با انمیلا مام رفتن با معاویه و سایر اشخاصی که به جنگ گ ان فقط میده. چهار، کار به هیچ ندارد. چهار، یعنی که توی یه یعنی خلافت شیطان که سعی میدونه هیچی، به حفظیت هم، هم هست فقط میده به معاویه و امروآس و تدهاز رو من چهار، از هشتر عرض میشوند که بایده... به تقدمه حدید یعنی سلام یعنی رتبه خلافت رو جمهور عبد اینطوری میدونم اغلب مناص بعدا نگه آید اول بعد سوم سوم عثمان سوم اما ادعی از اهل سنت هم بگم میگفتن سوم سوم عمر سوم سوم عثمان اینم معنی چهارم از تشیع میخوام بگم معنی پنجمش های است که اخسته پس تشیع از امامیه میگنه در کلمات اهل سنت تأکید میکنن نه به معنی که هرچه گفتن قرآنی تشیع تشیع علوی شیعیون یعنی نه 100 درصد وقتی امامی نبوده نه یعنی اهل یعنی که ممکن باشه گفتن قرآنی شیعی و امامی بوده تا نیست شما وقتی با بشه اما حواستون باشه ممکنی که ممکن یک از این چهار تا معنی باشه ممکن یک مراد از تشیع غالبا مراد از تشعع یک ای از این چهار معنی قطعیه مراد امامی بدنه طرف اما گاهی نه گفتن تشگعه و طرف امامی بودیم غالباً می‌گوند چی؟ متاسیحانه، رافزی یا دجار یا که گفتیم، غالباً اینطوری می‌گن در امامی، اینجوری تعبیر می‌گنن اما گفتیم، این در غالب آقاعته گایی وقتا اطلاق می‌کنن احیاناً، حواستتون باشه احیاناً اطلاق میکنن رافزی رو بر کسی که فقط غالبه به تقدم علی علیسانه بر گستم یا باید به در علی علیسانه مثل به شیخن میده ولی اگه گفتن راقصی اون یه شما عوابت و اومد یا گفتن گشت شما شیخن این نه یا امامی میده طرف یا جارودی میده با. آره. باید بموند و از دبالت سومیا فریم کردن آره باید. منابع نجاشی طوسی هم کتابه فارسی اساسی نشون میده. آره آره, آره آره آره. خب بله همین میگم نجاشی دیژن نه. نجاشی خیلی فریده میفهمه درستش میگه. نجاشی خیلی اعتماد کاشه به. بعضی وقت اس بوده، اعتقاد اون بهش تا که خیلی وقت ها اس نمونیسنه. ولی تکیه و اعتماد او بر احواله متقاضی. در هنگی مثال دیگم میگم مثال خنده دار مثلا امرتون از این گفتیه که چی قدرگور کنه عرض میشود محمد اپنو زکریفن دینات القلابی البسی این طور ایجا نجاشی ترجمه داره محمد اپنو زکریفن القلابی محمد اپنو زکریفن دینات القلابی بعد نجاشی میگه این شیخ ها میره از خواب نامه میره هجوه بسره من وجوه از حاق نابل بسته تصریح میکنه یه از امامیه است من وجوه از حاق نابل بسته از بزرگان از خواه مادم تسته هست تو خاله من برای شما سنگیم اینجا بگم مثلا تو این جا گفتم اینجایی که سکوت نکنه نجاشه برعکس تصریح داره بر امامی بودنش به خاطر چی؟ به خاطر تکیل بر بعضی از رویات این شخص این شخص ریویاتی نار میکنه مثلا ایناها به این که دوره بر احسریا تعمین امینان مومنینه و حتی دوره بر نسایت و خلافت و وزارت امینان مومنینه اینا نخشکورسید من هم اصلا نخشکشم بعدا میگن تکیه بر این روایت درست نیست اگه بخوا دینا اینطوری حساب کنید بعد ببینید که بقولش شریک ببارو بارو و خیلی یا از مثلا شعبت ابن حجاج عبدالله ابن مبارک و اوزایی و خیلی از بزرگان اعلیسان همه را بشه و شیعه بیدید من سبب کنید چون سند اینا بیرزه به اونا آخر از هبه برده بگییدیم تا یک باید همه شیعه امان از هرم اینا این قلابی و امثال قلابی مثل اسمان یکن اوان البراش شیخ مخالی که این شیعی داشته. گرششی داشته. وقتی که از مشت بخاری میده و بخاری ازش نقد نمی‌کنه برش اعتماد داره، از مشت گرششی داشته، خود بخار ارتباط داشته دین کسی. وقتی ازش نقد نمی‌کنه. هر از قهرمانی، نچوش تسلیح میکنه به اعتماد بیتنش. تسلیح داره به امید بیتنش. بعد به آخر قهرمانی، آخو به عنوان اون واسه اش قلم موننده. همه چیا؟ سونیت بهش انداخته. همه سونیت مشایخ و شاگردان چند سمانی؟ طبر، پایش جاره بینه این که دوتا از شاگردانش چی هست؟ یکیش تبرانیه صاحب معاجم سراسه علمو جمعه قبیل، علمو جمعه اوسط و علمو جمعه سمی معاجم سراسه تبرانیه این از کبار همدستانه، دلوقان همدستانته پخدمانه همدستانته، مثل خطیبی بردادی این قلابه از مشایخ تبرانیه بوده بعد تبرانی از این آقا چی نقل یه حدیث؟ در مدهوت عثمان که رسول الله وقتی دختر طبومش که خدیجه بود، دختر خودش نبود به عقد عثمان در می‌ره می‌گه من از تو راضیم اگه درد دخترم داشتم به تو می‌کنم <تصفيق> می‌شیه؟ راویه چی حواستون باشه کسی ممکن که تبرانیم از این رو بوده؟ این که بله اگر که غیر تبرانی بود مثلاً اطلاعاتی که رجالا مهمونی آمنه می‌کنشی خب معلوم نیست که این حدیث از روایاتی باشه که قرامه روایاتش کرده اما تبرانی لایم نکه هست. امثال تبرانی درکو نبیده. خود بخوایم همیتونه؟ اینا بخوایم. کس در قوادیس احل سنت عمدتاً در دوبرن اول تشتی رخ داده؟ شایده شده در بیگهشون یعنی موقع که حادثشون برشته که تا در نمی آمده و چرا؟ رایش شده اما نه دیگه مثلا تو که بخاری کذاب و بوده و برای این قطعی نه چنین نبوده حقیقت ها چنین نبوده یعنی طوران چه قسم کن به نظر من؟ بران خیلی واضح بعد ببینید طورانی بدون واسطه داره رو برم کنه از کی نه. یعنی قلابی رو این حدیث از مردیات قلابی بوده سردخل قلابی چینی حدیث یا باید تبرامی دعاید شکل نداره. خب راویه چین حدیثی چون برنزرشان امامی نصف باشه که نجاشه گفته امامیه ارز می شود این آقا برسی که شایی روزه تبرد شاید عوجب روغی بوده صاحب کتاب از واقع بول کبیر در بینی احرستان که به شدت متشدد بوده نسبت به شیعه هم در برنی متحقیت در کتابش از این قلابی در حدیث میکنه، ردنماییت میکنه اول علمای رجالی در مشاستی که او حدیث نقد میشه و رو اتهام داشته چطور ممکنه؟ عادتن محاله که این تعداد از بزرگان اهل سنت از شاهد شخصی باشن و منتقد و اختلافاتی که ایمانیان طرف پیدا نکرد. چرا بدیم؟ میگم ممکن چه 4 نقل معقولی باشه اما غلابی سی نفر مثلا شاهد داره همه آموی توش یک این تو فهمونای هم برار داردن این عادتاً نه استظهار آموی بودن کنی ما سفار رو میکنی آموی بودن رو این کندنسته مدرول ارتضامی بسیار قوی داره که پاکمه بر نست نجاشی اگر بگیم استزهار که شاید که ممکنی جواب بده بگیم با شما از اینکه شاگرد شاگر عموم شاگردان و مشروعی کش آمیان استزهار آمی بودن کرده نجاشی تسریم به امامی بودنش کرده نصد بر ظهور مقدمی پس اون پیجر میگم نخیر ما استزهار آمی بودن این رو حاکم میدین یک نصد بسیار قلب میدینیم و حاکم بر نصد نجاشی بر امام بودن شخص یا مثلا میگه این ها مراشب به مقانه بنده و که تو ما مناقه هم تطویق میدیم قشط به بزرگ برای تو مشخص میشید نجاشی این حبیبو اونو عوز ابو تمام شاعر به کنجش مربوطی ترا ابو تمام شاعر خیلی مربوطی بگه نجاشی در شرحال این شخص میره که میگه این امامی بوده بشه میگه امامی بوده میگه اسامیان رو میگه میگه امامی نه کانه امامیه میگه امامی دو خب واسه چی میگه شعر زیادی داره اهل داره شعر داره اهل تا امام که بعد امام جواد ندید چون در حیات امام جواد از دنیا رفته ابتدام در حیات امام جواد از دنیا رفته به شعر زیادی اهل داره در متن اهل تا امام این از ترش، از ترش اونجا ابن غزانی هم که میگه ابن غزانی میگه که من نسخه ای از قسیدی بود در احلبیت رو بودم دیدم این یک مطلب که استشاف میکنه نجاشی به اماعی میدنش مزلح دوم میگه جاهز در کتاب الحیوانش میگه و حد دستنی تمام اشجایر و کان من روحصاق را کانم، رعصای رافظه یاهز میگه که برای من این آقا نبنه حدیث کرده ابو تمام، و این ابو تمام از رعصای رافظه میگه فهمم از از سنن، نمیگه و از سنن میگه فلان، حتی از سنی فلانون و کانم این را تو از سنن؟ میگه و کانم رعصای رافظه چی گفته اینجاز؟ نجوشی به این استشحاد میکنه، نمیگه که خانم رافز، خب。را خب ما از رو را را پس کنم را پس این قاعد درس نه نجش شما اووراق اومد نجش شما اووراق اومد نه میده و خانم رو اساء را بزن نجشید خب پس این اموری میبینید راضیه کی اطلاق میشه که امامی خب مصدور میکنه نجشید اگر میشه هرها تمام به طرفو نگاه کنید تیکه به اهل سنت میگن اگه کیتر فرین نکنه مرده چون مرکه ندشن که اهل سنت یا دارشگاه نداشتنی نیست موسوی شدی مخترعی بیامونه و از از شدی خطی بر وارد یک یک خونه وجود نه عرض که یک روز من بر حالا یا کوسش میکنه یا تفسیر میکنه میدونم نگاه کنیم تو کتاب همین خطیب دفترتی به ترجمه همین همون تمام هر وقت دوشه بیلی از از میشود که و اصلا ششت. لب نمیسته موگه رایی شیعه هیچ نسبت کوشی که نسبت تشعیم اینو هم نده تو چه برسته رخص نسبت تشعیم نسبت رخص که هیچی نسبت تشعیم هم حتی دوب نده پایی خاقه جمعه من نمیشنم اینجا یا وقتی نشان برای تو بخونم شرف نمیشن حالت دستالله جهگلی جذاب باشه بعد بله من اینو گفتم در موردش گفتم که بعد در مورد حبیه ببینو عوض بعد از که حرف نجاشی نقوم کنم میگم که و کل رو من ترجم احوم من علما الامه مثل الخطیب و سایر خطیب نمیگن سب الهیه ات تشعیف هیچ کس بهش نسبت تشعیف نداد. بعد خب اینجا میگم ولا عطری کیفه یکتم ازالک چطور ممکنه این سکوت این همه ریشادون اهل سنت تراجم نگار اهل سنت ابو تمام رو ترجمه کرده به نسبت تشیع ندانه ککفه یکم از این ترجمه و این سکوت من شهرت امامیته با اشتهار این شخص به امامی بودن حتی سوار همین رؤسای رو... رافزه این چطور قابل جمع به اینکه بگیم طرف اینقدر مشهور شده به امامی بودن که حتی از رواسای رافضان شده کسی اگه از رؤسای روح... رؤسای میشه می‌شه بگیم تراجم نیباره احدیسانت دیگه متوجه کوچک در نسبت نصفات تشریعان شده، اون قابل جمعه؟ قابل جمع نیست عادتاً کسی عرفت از روحصای راقزه می‌شه نه؟ همه می‌شونده که بلان راقزی هم از روحصای دیگه نگفت راقزی هم که کسی من روحصای راقزه، جایز راکز حتی دفعه همون تمام و رکانم من روحصای راقزه به قسمت یک کسی امایی مذهبه اینقدر اشتهار پینا میکنه امایی بودن امایی که از روحظه میشه، ولی نجاشی میگم خطیلی وقتی تجربهش بود در کردنی، تجربهش بکنن، بنامی، تجربهش بکنن بنامی تجربهش هیچ نسبتی تجربه از از باید به خود تمام قائله به چه میده مثلا به به تقطعه علیلسن بر اساسه دیگه از این چیز ولی به شط میشه این فن نمیپرهخته و ایران احتمالاً راست رو قدم کردن علوره چون میدونه که تلفون و تلزی یک آله آله یک مذهبی اگر چه دلالت بر هویت یا مسافت اون شخص میکنه اما دلالت بر هم مذهب بودن اون شخص نمیكنه یعنی اگر صدوق میگه حدس این فلانون رضی الله یا رحیمه الله این اگر چه دلرته بر حسابتی شیفش نمی‌کنه. اما دلرته بر امامی بودنه او می‌کنه چون ترخم و ترزین ترخم کنه هم مصحب بودنه طرف کنه. یعنی یکی امامی هم نداره ترخم و ترزین کنه برای غیر امامی. سونگم هم همی حالا، زهرگی وقتی که ترچنه می‌کنه، از رو تمام رو جاله ده که متصف این رو می‌شننه بستش رو سراش می‌کنه و یکیش خودش اونم قصاید زیادی در مطمئن متصف احواسی می‌سوراید؟ نجوشی آخر ترچنه می‌کنه، ردی محول داره پس عهد سنت نمی‌یام، نبینی؟ ما همین رو که دیم می‌کنیم، نمی‌کنیم قطع منطقی براش یعنی میگیم که قطعاً تصحر و تمام سنی میده ولی به طور عادتاً معمولاً چیه اون قابل اجتماع هستی که کسی مذهب بوشه اهل مذهب باشه و برای ترقوم کنه اهل سنت و عرض نشود که صاحب بشه علم مذهبیش این ترقوم ترقوم ظاهری به وجود بیاد میکنه برای که اونها یعنی اهل سنت اونها قد داشته که این هم از رو خودشونه شاید اشتباه باشه من شاید اشتباه کردن ها و ابو تمام مثلا تقیه کرد اینجا نوشتم ما علم داریم که حالا اینا که ما استظهار میکنیم یا مطمئن این سنی بودن بعضیشون متقید در مذهب بودن تقیه کردن حداقل بعضیشون ممکن ایجاد باشه ولی این درنات این ترهوم و این سکوت ها این دلالت میکنه برای اونها این را از خودشون دوسن یعنی علم داشتم که ابو تمام همصره با خودشون این درلت داره، به وضوح این درلت داره معاید نه، درلت داره، درلت کن گفتم جایز نیست تلخون و ترزی همونطور که هم جایز می دینیم تلخون و ترازی رو برقامه، هم نه اونها هم تلخون و ترازی رو برای شیعا جایز نمی دونن این پارو آره. بق. و اینا درلت میکنه برای که اونها اون تمام رو از خودشون دونستن و این تنورس جدی را میبار کنان نشید خب اگه بعد جایز میگو خد اصلا از این قبول تمام عزمو شود و کانه راقضی یعنی یشتم و و عمر تمام بودند این قبول میگوی این شما دسته خیلی اما سرف اطلاق رخص همونطوری ما میگیم تشیع احمد امامی بودنه راقضی بودن هم احیانا را رخص اطلاق که بر کسهایی که بودن و بودن یکی از اون چهار تا معنی متقریده خیلی مثلا به تقدم علیه علیه و یا حتی اکتا به افضلیت علیه سلام السلام بودن نصف ولی خلافت شیخنگ و زیرسال نمیده مثل متضیره دیگه در این حالت که بایده به عرض میشه افضلیت هم میرن و, شیخنن. خلافت و زیر شیخنن متضیره گوزی هم پس رافضی هم مثل تشیح بقیم رسولی اینه که رفض با تقریباً نمیگم غالبین غالباً نمیگم با, با, با تصمیم تقریباً میشو گفت که غالباً رافضی بودن اطلاع شده بر در... کسایی که تمامی بودن آره اما نه هم میشه مواد تخلافش کم نیست معبر تخلفه پش هم نیست. کما اینکه اگه گفتن فلانو تشیع حیا شیعه نو ایو نکنید که مثلا اسم شی تکیه اعمت امامیه است. پس چه مراد امامی مییدن طرف نیست. نه،, نه. ممکنه گفتن فلانون تشیع حیا شیعه ایو برای هم میده. چون پنج تا دا من داشت چهار تاش اعم بود دیگه. چهار تاش منافعت باسلونی میدهن طرف نداش. یکیش امامیه. ممکن هم گفتن کلا اون برای یا امامی میده. حتما لازم هست پیدا کنید. دنبالی که اگر راخضی نباشی، یا بگم بلانون بلات شیعه بلات شیعه میتونه عرض میشه و ترسومی باشه و صرفاً چون قاعده به تقدام علی علیه السلام و عثمان مونده بهش گفتن بلات شیعه یا معاقیت دوشنام میداده اینو بهش گفتن و میتونه بلانون بلات, بلات شیعه یاله بعد امامون بیدن طرف باشه باید جستشو کنی، و تو جستشو چی حرف اولا میزنه؟ اختلاعات او با آمن مشروع. یعنی اگه بیشتر شایران و مشروعه ایش ترسونیه این حاکم بر تمام جزایی هست میشه میشون، آف، یه لحظه اجازه بود، این طرف هم گفتن همینطور اصلا؟ یعنی هم این اشتباه رو بقا کنمه ما مرتقب بشدن احض سنت ازشون بلترم شاید باشه باشد جهادی چون احض سنت ببینید علمای ما استفاق نداشتن که مراجعه کنند به منابع احض سنت برای قیزه حدستو نبید به امامیه جوریه که اصلا دوست نادرون باز کنن <تصفيق> دوست که طبایی مثلا شیخ موفید مارا دوست نادرون که طباییه که ماهی مثلا باز بهش نگاه میدازن خیلی خشک و ازدناکن بشکیه به امامیه اونا بعدشون بدتر شاید از اینجا ما من تصفیل را ماهی ما بود کردن ها پس نیم پس بس. بس. بس. که آره، محفر دومه آره، یه آره، یه آره، چند، تو بحث تذبیف ها اعتبار تذبیف همینطوره همینطوره، همینطوره درده هم اینو بگفت اینان تو همینطوره، یه تو گفت اختیراط، مقدار اختیراط شخص با عهد هر مذهب، این تعلیم کننده یه مذهب اوست دقیقه کنه، این خیلی مهمه یا که هر چقدر که مثلا نص صریح بگم مثلا بگن رافضیون گشت باشه یا یزیدی باشه یا میذار اختیار شما درم بحثو مثلا آره آره یک یه صریح خیلی بروازه باشه این تعصیه برای تسنیم همطور که این حاکمه برای اختلاف نفس و و برای تعیین مذهب شخص همچنین در تصدیقات هم اینطوریه آقا مثلا گفتم فلانی ضعیفه فلانی زریفون جدید لای اوتمت و عله تو رجال نجاشی تو پیرس شیف توسی ما عرف می شود بلی داریم که از او همه عجل لای ما دارند رو روایت دو کنم به همون شکلی که گفتن یعنی کس رجل روایت رو عجل لای اندرده چون خصوصا کس رجل روایت رو؟ روایت هده. اجلال یعنی تعداد اجلال میدارست زیاد و اتنابی از شخص این حاکمه وقت از افاتره. این حاکمه. دقیقه ببیندم. یه چیزی دو بود دو این چیز که فعنده می‌پنم. از بسالها و گویشانیه. هم تو مسئله مذهب هم. ببینید و همین کشی، اگه نگاه کنید در رجالی کشی، در یک جا شرفار محمد ابن سنان قیدر و یا صرفتش نمیشه، کشی میگه که آقا از این شخص فضل پیش شازان، خیدر فضل پیش شازان محمد رویس رو ابن اوبایت علیققینی عرض میشود محمد روحنان حسین ابن اول خطاز و خیلی رویه، از قدول که از اهل این بودن از اون اول با این چی داره میکنم که دیگه اوها بگه آقای اون که احمد بن محمد ابن نیساییش حتی علیه به گلوبه و کس گفته که محمد بن سنان والی و دلوقوه این سادگانی نداری خصوصا وقتی که کسی که طرف جرد داره بیشتگه نواید از خود شخص داشته باشید این خیلی اوضاع میشه این حاکمه اون نفت اون زاهری رو و فکر کنید این استثاره یعنی بدید که من امارات رساخت کس روایتو لعجل لاعنه خصوصا چیه؟ کس را تو روایتو لعجل نه، این کننسته و خیلی مالا از, از, از اون, اون از نسلیه که نجاشی هست احمد و محمد به نیسای عشقلی نقوم کاره این ببینیم مثل این یه یه گفتم این قضایی هجالی نامده این هم نام ای کرده عرض که نیستن که آقا من اگه بگم این مغازه خرید نکنید به طرف سرتون گلا میزنه سرتون گلا میزنه بعد شما بیدید ای؟ من این مغازه میزنه همه دارم از رو خرید خری احل من احلی دارم به حصی خرید میکنم خصوصا کسایی که ارتباط دارن میند... کشی میده میناد احل و اهل ایم ادولی نیستن که معمولی باشن ادول از اهل ایم دارن از این آقاری باید بکنن عجلا این چیم یعنی تو نیستش که ارتباط دارن این بزیر باشن سرش که این کار نمیدو باشه ادول از اهل علم دارن از این محمد ابن سنان. رب روایت میکنه. بعد من میگم که آقا از این آقا خرید ندارم شما می‌گن همه دارم زبود رو خرید می‌کنن یا بابا برون خدا این را خرید می‌کنن اه؟ خب سازگاری داره؟ این حاکل هر درست به هم بلیه که بوده، اینا قضانه محلوس می‌شن یعنی هر کسی می‌ده این حکومت داره بر اون لابوت من اشتباه کردم لابوت من اشتباه کردم خود نجا شخص را از این قطعه استفاده می‌کنه در شرحال از یبن محمد، یبن قطعیبر انشاهولی از مشارع کشی رو می‌ده این شخص و کشی در اون نشارش از اون نمید ك... نجاشی نصد بر بساقت این نداشته مثال فقط اینو نمیده علاگه تبده ابو امر ابو امر کشی کشی بر اون اطومت خریده چی داره اجوانش اینو هر بواسه چی می‌زنه؟ ببینم از سفراتش چیه؟ اینجا. برای علیه اعتمد ابو احم از کشی کتاب رجال کشی در کتاب رجالش برای اعتماد کرده در بودیه تا قابل توجه از اون نقل کرده باید داره همین میخواد بگه که من نجاشی استظهار میکنم که این آقای ابن بوتای به حد درقل رسل خودی کشیم رو اعتماد میده برای نمیده میپسر اینکه کشی فراوان از رو نقد میکنه علیه یک تمدع و ا بی کتاب این دلالت میکنه که این ابن ختای به حد اول نزد خودی کشی اصبهات بوده ببینید خود نجاشی در متن حدیث ممیه استفاده میکنه میبینید یعنی میگه که روایت یک فرد جلیل اصلا عجللا نیست اینجا ما روایت عجلدار رو براتون گفتیم نگفتیم روایت الجلی کثرت روایت اند اندلش وقتی می دوای به ولا اجلا عادات و خصوصا کثرت الوالد اجل مانند چون من فرض می کنم اینا واسه چی میگید یعنی میشه میشه استزهار از اعتماد احتمال کشتی برگو و وصابت این شخص نه تو خودی کشید بده متایبلش پس قضیه بسیار ملموسی و این حاکم است مثل همین میگم تو محاوره تو کارهای روزمره نگاه اگه کسی میگه که پولادی متقلب گروه فروش من شما همه دارم ازش خرید کنن دونم اخلادی که سرشون به حساب کتابه نه مثلا چندتا روستایی که بگیم حالا متوجه ایستن عدول من اخل ا اجلا دارن از روح خریقی کنن دیگه خب معلوم را حتما میرازه به حالا صحرین که زیاد که شما میگی صحرین که زیاد این هم بگیم مخشن. طوری که دیدید اینا دیگه من برای اعلام میاد. یه چند تا راجعو سخت براتون میگم که فکر کنم براتون جذابیت نشه. صفحه مزیا کفرت این طاریو یه ماشوری كتبت. اما این کتابی نوابه داشته. کتاب نواده داشتید کتابش هم این مورد از منابع بکشیم. کتابش از منابع بکشیم. حالا این 125 میاد. فکر از منابع از میشه سهل بود زیاد، از میشه وقتی ما اینقدر شما میبینید که می کولینی با ادیکی نام کتومی ادیکی است، مثلا ساقوت هست محمد بن حسن از ساقوت، علیو بن محمد از کولینی، عروزی، آن ملکت الله. ندارند از چی وادو که محمد بن تعبیر عسیی؟ زیرا ما چنین بلدیم. ادی کولینی گاندیه. بعضی وقتا نامشون میاد، یعنی یه کولینی میاد، علیو بن محمد و محمد بن حسن، ان ساده بیشتر. بیشتر وقتی میگه و وقتی من میگه این و محمدنی و محمد من رو سفاله هم سهده وقتی این از این شخص ما این رو می کنن زیر سوال؟ یه زیر سوال که به تصدیق عرض می شود سهده فیزیا پداخت بخت زید کن جدن بگرمو خود تمدن مهده آخر تأمیز داره به بوده. علاوه، چرا؟ چون بگید، نجاشی بعد از اینکه بید زعیفمون، به این موضوع تماشه میکنه، این مورد اعتماد نیست. کتابش رو که زد میکنه یکی کتاب تویی، یکی کتاب نواده. که کتاب تویی دشگاه باهت تریس میکنه کتاب نواده چون وقتی زدیمونه آخرش میگه سندش میتونید. میرسه تریک نجاش به کولینی، کولینی از الان اثر بعد از اینکه که میگه محمد و نگرمو که تدریبش ان از ابن محمد انسر بعد میگه و روا و جماعت این کتاب نواده رو دی از زخنه بشی کرده خودش هم تندر نشکم میزنه رو به خودش روا و انبو جماعت رو این نقطه داره، اینکه که قدرکی وقتی میگم این کتاب رواغ و عدت رو مینه اصحاب انا یا جماعت رو مینه اصحاب انا اینو دمرتن و نمیمونه اصحاب ما اعتماد داشتن در این کتاب به نقلش اعتماد اعتماد داشتن بس کتاب مشهور بوده دیگم سفر بزیاد نگاه میواخته یه رواغ من با جماعت یک نکته دو درسته نداشه تذکیف میکنه سفر بزیادو اما چیه؟ حرف میشود؟ یک کتاباش ترکازی نده نمیگه که این کتاباش کلوها تخلیطون مثلا کلوها لا یوقع این کتابه هیچ که ها نیستن پنچه هر در میزنید در کتابه میگه میگه تمام کتابش به لبن خود که درمدازتر این حق و نمیزنید و این کتاب نواده در سختی از منابع کلی حالا ما حد ویساقت صحبت, صحبت مزیادا از چشموشید کنیم کسرت روایت عجلیم بسرک کنیم کسرت روایت بکیلا انگه رجل در روایت اگه برای ویساقت نکنه کمتر چیزی که میکنه چیه؟ اینی که روایت اون شخص باب لبا بایده مقبول روایه بوده در روایت بعد مقبول روایه بیدنه درم فارغ از موهبی که میشواد آقا این احادیث رو یادتش مخاطب اینه که قریمه داشتن بعد اعتبارش مهمترین ترین بر اینه چیه تکرار یک حدیث در چند کتاب معتبر این قراره که شفقت اون مهمترینش ترینش همینه تکرار حدیثی در یک در چند از از اصول معتبره کسی میتونه بگه این, این احادیث رو از صحه رد کردن که همه قریمه داشتن داره صحتش یعنی صحه مغل رو روایت نمیکنیم چرا نه، سهبه بوده، نه، معموله، اینا قلیه نداشته. میشه هندوزه. ولی خداییش به طور, میشه, به طور میشه از ده حضی هزارتاش حدیث کتاب کافی نشد. ما ببینیم که همه هزارت حدیث هم قلیه هم راشونده، این نمیشه. به طور معمول چه اینجته درست نیست. به طور معمول با که برنسی این قراره همراه تمام هزارت حدیسی ناب بوده در این هفته روز نیست بایدتاً به طور معمول علم معمول عادتاً چنین چیزی میشه توی جاهایی که ده تا بیست حدیس نخلق کسی این هفته روز باشه اما نه چیزی که انگر روایت داریم پس تصرف بوده روا... من این نواره تو براتون بکنم اگه میخوادن یادشون دکیستره نویشتن ببینید بله به نظر بنده ت به نظر منده. روایت به، روایت که ببیقی کستک روایت عجلا از کسی بهترین دلیل بر اعتبار روایات آن شخص است بهترین دلیل بر اعتبار روایتش نسل تک، وضعه‌تش از این ادوم کردیم، اومدید ما این دob بر اعتبار روایتش بهترین دلیل بر اعتبار روایات آن شخص است و بر تصدیق روایات آن شخص توسط علم‌های رجان چیه؟ حاکمه اینه. روایت، کسمت روایت عجل این بر تصدیفات رجانه حاکمه. حتی احیانم، برای این می‌گم. داده بر رساقتش نمی‌گیم همیشه، داده بر اعتبار روایاتش می‌گیم. اما احیانم، یعنی بعضی نه همیشه. اغلباً نسبت روایت عجلان رجل بر که آن شخص علل اطلاع واکمه به طوری که مردی و هم بر استوابت مریا اند در را بیانش همون عجلان روایت یعنی اون عجلان اینو حتی سبب میتن داشتن اغلبت اینجوریه نه فقط در بر اعتبار روایتشه اقلش اعتبار روایتی روایت که کسر به روایت عجلان الرجل کم تا چیزی که دلبرت داره اینه که چیه روایت اون شخص مطلقاً و احيانا حتى داخل مدرسه هم همینه. نفشو شما میاد به بزرگ توت مذهبش فرق به بزرگ اشتباه کرده. فاعت بسطه بسطه بسطه بسطه. به وضوح مثلا گوشیت ساعت 12 به همین وضوح که در مذهبش اشتباه کرده، اشتباهی که در تنزیقاتش هم اشتباه کرده. خصوصا با احتمال هر که به داشته. خيلي يعني حالا کيني از اين مي شود متاثر هاني تعداد علماني جانيموكي به تاثير پدر توصيبات دارندندش کنه اگه خدا مي دانست شما کدیکه علماني جالب نشين که به تاثير پدر توصيبات مي شما مي ديدی چطور اونها نجاشيد دارند دیگر گرما دروغ میگيره همونطور که در بين حديث نميت اونها نزدیک از 20 نفر از بهره جاري شوند 20 نفر از بيش نكرد ملاماشون از نظر جانيم کنن مي گن یهش بیسته که اينطور افراد دزدگری خب برای کثیر دارید نزدیک که بگی یک 14 بیشتر، نزدیک که یک صف از رجال بعد نزدیک نیست از رجال حدیث اهل سنت اخبار در و تدوین اونها یک توصیبش کردم میاد تدوین می کردم باها رو. میبینید چون درشون پیش میاد. اگه 4 دیگه نشو بود، دو تا دیگه allele برداشتم کنار نجاشی مون داشتیم که نجاشی نمیشد هر آخر ما. این تصاویری نمیافتاد عادتا به اطلاف اخبار پیدا میشد کلی اخبار عرض می شود که میگید نمی که همه رو فقط اگه سوالی ندارید میشه ضمن سخرنمزدیات چجوری میتونید مبادله بکنید میشه میتونید اجازه بدید سوالام رو سوال یکی سوال یکی تا تا سوال میتونید برای از و دون که امفهمان شد استفاده که هم داشته باشیم مانه یه قول اجمالی شما بگیریم که سؤال بندی اینه که ماندار شاید سؤال هم باشه خودشون هم سؤال این این اختلاف کسیری که این در این اختلاف کسیری که فهم یه دلیل تقریریه در دلیگ نه یکی یه بیانه یه یه بیانه اعمالیه ببینید م... می‌نز چیز روایتو در فران چیز؟ درایت. این درایت در... این گول نجاشه روایته گول خودشه این درایته تایی که تعیین کننده مذهب شخص و به شخصه و خاچن گفتم این قیه خاچن هم در بخش تصیقات پااکشنمهنمای مجن ها اون طرفم که چه س اختاطلااس شخص وقامه تعیین کننده اینه که اون شخص کایه و گل نروشین این در واقع این تحلیل رو پیونه تحلیل لاک یعنی الان میان من شوهرم میگم من قاعده لاستیا اون مثال اورکی یک مثال رویی زدم خود ایشون من میگم که از اصلا خرید نکونید گفتم خیلی شنی اینه گوش هست اینه وجدانیات قضایای ملموسه وجدانی کلنخ یجن خود فی نفسه تخیلون میاد بدن نفسه خودش که من ها من اگه گفتم بدن نخرید نکونید و شما میبینید احواله مطلی، که حواسشون جمع در میان از آقای خلیل میکنن. خاطر من یه پدیدیز داره. ما گفتم استاد ما اعتراف نداریم همه زوایای تاریخی تحلیلی ما از هزار سال پیش داریم. یه تحلیلی رو استمرار میکنیم با مثلا حالا کثافت حالا اینا هیچ چیزی بیکار این بگم، بعضی از این قاموس رجال مزوش. اما قاموس یه درجه بود، متأسفانه اومد چرا؟ چون در قاموس رجال، بعض از این که بودن، در نفرش قاموس شده، در نفرشون. ما ترجمه شخص رو در قدوب عهد و سکوت اونها در مورد مذهب شخص رو من تو سعید قاموس رجال هر کی خطی کس رو ترجمه کنه و سکه مذهبی مذهبیه اینو گفته که این زبور در زبور در در, در, در, در این و این موقع در با استصحاب ایمانی یعنی طرف از رجال نشه از مطلق ترجمه از مطلق ترجمه و مطلق سکوت عامه تمام تمام همش استصحابی کی میره آمین یعنی بخشه این اشتباهه مطرق ترجمه شخص در کتب رجالی اهل نه و سکوت اونها از مذهب شخص دلیل بر آموننش نیست و بهش به مشایخ کنیم. نگاه کنید گویا طرف خوب خوشلاخته شده نیست اونا توسع نکن یه خطی برای این موقع ترجمه میکن یه شرکت رو آن بوده یه شاگرد را نود از سمت مین. آقا روایت یک سومی از یه شخصی برای ی اون شخص از یک سومی دیگر این کافی می نیست برای اسس کار عام می میدنن، مجدت شخص در کتب عامه نمیشهش اسس کار آم می بودن کرد باید نگاه کنیم مشاط و شاگردان فقط نگاهام کل داد مشر به شاگردانش بعد دقیق کنین، این ترین کننده است و احجانا روایتش حالا تو بسته روایتش، ببینید روایتش این شخصیه اگه بخواد داله برای امام بودن بکنه مثل اینکه طرف نگه کنه از امام امام، از امام کازن که امام بعد از بران امام اگه شخص اینو نرخ کرد ما از اینکه بکنید که سنگه آمه ای رو سکوت ولی تو تو کتاب خودم که امام موساقازه ملیگ سلام که امامی از من رضاید دقیق کنید نسته بر اماماتی اگه سنت؟ این هدیست تا اون درست باشه این داره ملیگم بودن ترم کنه. اما اگه سنت باشه؟ نه ممکنی از رعایت نباشه. اینو نه باشه اینو ب چه بیدیم؟ بچی رو اگه میگه که عرض میشه که مثلا فلان آقا دقت میگه می میگه که از پنیابر نمون کنه ناس، بعدن، بعدی احبوبکس و معنومن این حدیث از طرف از پنیابر نمون از فلان آقا خب ما اینجا راهی نداریم که بیدونیم در این از رفاییاتون شخصه یعنی نمیتونیم استشهاده میکنیم. بگید طرف سر درصد آمیه چرا شو شون اگه شما دخواید بگید از روایی تو این شخص باید سنتمون سعیل باشه خب ریجاری که این وزن هستند اون آقا توصیقشون از طرف پیه آمه است ما نمیتونی که توصیقتون اعتماد خواهیم مگر که شخصی مثل تبرانی موسی می‌تواند رویت کار کشد، مثل من که کردم اماگه کرد. اما اگر با واسطه باشه، ما راهی برای تشکیل این بساید، نداریم تا بگیم در صد این رویت که اکثر نازل بعدی، بعدی، او بعدی، ما اومد، از هر دو که این امر نابدش بوده، ممکن نه پس بهش بیش نیم نه، وای نمیتونی نیست ما به به خلاقی که نقل کنند که طرف چیه یشتون و عبابک من یعنه بله گلم های رجاکشون نقل کنند از یک از معاصلین یک از معاصلین رو آقا که فرمانی فیرانی به شند عبابک عمر یا فرمانی گفته که چیه؟ عبابک عمر بخانده از یک سرهای مطمئن مثل طولین یا جاه طور متور که این آقا قائل به هفت سره یه و عمر و تحصیح دامت اینا هم تقییم کننده هست بوده. ممیدم میگم تو قضی رویاد دست اعصاب را بگیم کمی مشکلی و این عظیبت هم اینکه بگم علی، این اسمایی رو کنم اوان اووردا که گفتم شیخ نجاشیه شیخ بخاری بوده جاله برای براتون بگم که این آقا رویاد اینا برده برده و اما اینا برده برده نه. این هفته داره بر و سایه از قلافت به وزارت امیران مومنه برست خیام برکتم اما این روی براتون برم این قضایش مفصل اول به تو شاید منظور از وصایت ابن عبیل حدید بگرد وصایت در شریعت باشه، اونو تعبیل باده، وصایت در شریعت، وصایت در دل باشه دقیق کنیم، ازش نفس که امیران کمونه چرا که مسایده اینی اینا داره برای ایمان طرف ایم. یا اینکه طرف اخباری مسلحی باشه، هرچی شینده هرچی شده در وقت بزنین قراردادی برای دفتر مسائل بده چند تا نامه بره که خیلی بیشتر روایاتی که در مناقب امیرالمومنینه و خیلی نامه از طریق این اشخاص نقش شده اینا همه‌شون هم اومیدن نجوش اینا اشتباه کردن بهتر اینا چطوره همینجا تو مقاله من هست حالا بختم شو بخصوصا میگم براتون جالب باشه یکی مثلا همین اسماعیل بن اول عبدالر، یکی لوطیه یعقوب ابو مخدر معروف اینا این با تاکید در میجویند ندید مطمئن بشید اموال با هم بعد داره با تا بود. ما آموگودانش هم مطمئن نیستیم ما یعنی فضای طرح. بذار هم ما میدونیم که مطمئن نباشون نمیت تحقق ما به نسبت سطر اصل محقق نشده. تمون که بودن هم مثلا اونجوری محمد بن سکریاط دینار اغلابی ابوبکر جیادی هر کی که اینا اوایل جامعه به اقتصادی هست. همین اسماعیل بن ام امام خیلی همینطور. محمد بن صاحب یه یعنی عبدالحمید، علی همانی، آقا کشی میگه لفتر عبدالحمید در کتابی که تصمیف کرده در مورد امامت چه نی گفته؟ عزین استنباد گرده که این پس چیه؟ امایی مظهر، تصمیف کرده کتابی در موضوع امامت، آقا اینکه سره، اون ابو محمد عطروش که جد سید مرتضان هست نجاشی میگو که سن را کتاب کتاب هایی فکر یکی شده ای بی که کردی هم اینا هم دلتبریم اینا هم نمیشی اون کود را آقا ممکنه مطلق امامت قسمی کرده شد نه امامد های ما ایمان یا امامد علیه خودشون آقا ابو محمد ال الاطوش از بزرگ فرقه ناصریه مراقبه از ناصر را نتر رئیس زیدیه بوده اصن سید کیتلش نمیکنه که این جد چیه آره آره اشتباهی که هم سید میزنه نه بودی چی بود باشتو به فردا نمیذاش اشتراک کرد سخت است اصن رو راحت خیلی بیشتر از این حرفا است اشتباهه تو به بخش سید مرتضی امروز شما اجازه نداری که ابی برای سر علی مختزری میاد میبینی میاد آجل علی المنی این به زمان به چیز در شهادتش داشت سید کار کنه می‌موت. اصلا نمی‌تون متوجه تجرد روح হইم. من نبوده که لطافت چطور ممکنه امینانومی انداش بشه تمام این امکان چطور ممکنه اندنومی جسمان چطوری ممکنه یک چیز در آن باهی سر سرنا بره؟ امینانامون امیم کار <تصح> نمی‌کنه نه؟ بعد من ناز واسه من بابو محمدی کنید. اینا رو. حضرت ابو محمد فرد. اینو می‌گوه. رئیس پدر نازگش با چندیش یک به شدت بره به تا قراره بده بشه. تو چرا مخالفت با پایمون نمانی؟ یه بگو. شعر فرزندش پرزندش. چه ماعی نصب بود؟ فرزندش شعر داره در ذهن پدرش ابو محمد رو توش از. عرض می‌شود که بعد خوابر همین نجاشی. واقعاً عبیدالله بن خلد از جافی رو مخنذ داره. مثلا غالباً عبیدالله بن از جافی عثمانی مذهب بودی. چندین تا شبیه که اتماماً میره پیشش پیش تله میکنه می‌کنه که یاری نمی‌کنه. این بعد از عثمانی ن... مذهب مثلا نجاشی چیه؟ اول که تاورش میواره با من سرد صالح امامیه. دیدی که متوجه عثمانیه، نهشش نمیشه اون میوندنش. این که از عثمانیه، تجارت میشم، همه موجوده. عثماني بوده ای چه وضعشه همینطور خاطر شما که و فراغون از این قافا دهن می‌خوادینه بله بحث می‌شه تحلیل ها که همین کار که شما می‌فرمایید میان همین نگاه کنید اتفاقا یه چیز دیگه عبد خب محمد الاطوش سچ کنید اتفاقا فکر کنم آقای چیزا موضوع ترقفه هست که آقای سخنینه میشه اینا به معنی درک این ریسفه من واسه IAS اناس هر ملقب به رو لده، ای انتروفیم پسرشان بوده، اتحابش قرار بوده در مسائل مستریه میگه که این ای در اوز بوده قداره بر بر، خب، به خاطر که خیلی محلش بوده میگه، به بکن متعرضش میشه میخواسته بگه که نه، این جده من امای مستر بوده، نه از نه بوده. این خوالا نبودیم، این آغاز خب، دودگه هسته این مورنیزان، نمیگه است زمانش تو دنیا چطوره میگه؟ اشتباه میکنه. اشتباه میگم نمیشه اشتباه کنه. و شاید میشه که کلی اشتباه دبوازی کنه باید اگر. کجایی خنده دار؟ اشتباهاتی که یه خنددار دار باید دارد ماخل نه این نخلابی سید مرتضی کسی که حرفیز زده نقیز یاد بزن رانی رجال میگه آقا گوش کنید آقا ایشون میگه سید مرتضی میگه ابو محمد آقا تو جد من یوم از خبه سید مرتضی میگه فضلیت شاسان و یونسو دبدالحبا کافه میدن شونی تصیلی هزه؟ میگه فضل پیشاوان و یونس تظاهر کافرن چون هم همه رساله شیخ مرتضی کاظم شیرازی رو میگه همه میدونن عباراتش اینه یعنی همه میدونن که فضل پیشاوان و یونس عامل به بیاس میدن این هم و آمده به بیاس کافر است یعنی کنایه داره این دو تا کافرن همه میدونن که این دادن مثلا آرا. امام بزن درن میگن همه میدونن که فضل و یونس ممکن آمله به قیاس و آمده آمله به کافر است. سید مرسیدان تمام قومی‌ها رو اصلا هیچ حدیثی رو از قومی‌ها بغونه نمی‌کنه. میگه احل قوم همشون اهل تشکیف و جعب بودن. و راگه حدیث و باید آده‌ی باشه ما نمی‌تونیم حدیث قومی‌ها رو بخذیریم. کلو قوم بو شده حدیث مجبرتون. احل قوم الا میگه جعبت‌ها رو نبای برد. می‌گه احل ق احترام آمیزه به الله خب نیست و گم میگه احض و گم همه شو هنده جهب و و ما نمی‌کنیم کسایی که قصاد نزحق بودن احضی رو به نزیریم احادیس و گم جواب میده تو مختم توحیم میشه. آقا همه‌که آیا تو قرآن تعریز یا به رو میدن. اصلا، یعنی علم، علم و قدرت پروردگار گالبه بر همین چیزه، اونها در قدرت و علم و پروردگار بر آنمه ترانده، علاقات اسم همینطوره، که روایت داره که از ما خوبی ما رواید کرده ایران هم تعلیم داری؟ داریم، چه آه، سینه مجلسه دنیه. خلاص باش. هم تو منبل رواتی مصلیه هر روز از اعوالی ماست، هم تو رجال، هم تو شهری چه من دارم که سید مجلسه ببره، این صدا را سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید، طالع بحث شد. وسط اوقات شدی. ممنون از اینکه تشریف آوردید. قش می‌کنم.